سلام مارز و کانال خدناش شما دنگ آزادیز من شریفی هستم به این قسمت از پادکست هوگمان خوش آمدید در این قسمت در خصوص امواج اختلاف صحبت خیلی کرد وقتی صحبت از اختلاف می شود با توجه به طرفین اختلاف و موضوع اختلاف با امواج بخش های مختلف را بر روی استیم مثلا اختلاف بین زوج و زوج اختلاف بین موجر و مستأجر اختلاف بین کارگر و کارفرما اینها اختلافاتی هستند با موضوعات مرتبط با خودشون و بنابراین وقتی صحبت از اختلاف می‌کنیم به اعتبار موضوع، به اعتبار طرفین با انواعی از اختلافات روبرو رو هستیم. پس وقتی به صورت مطلق گفته می‌شود اختلاف دارند طرفین با همدیگر باید بررسی کرد که این نوع اختلاف چیز چرا که با توجه به نوع اختلاف ادامه یه مسیر از حیث پیدا کردن مرجع حل اختلاف و احکام و قواعد خاص حاکم بر هر نوع اختلاف روشن خواهد شد.